عزیزم سلام تو از وسطاش وارد مجموعه شدی وسطاش همون جایی بود که کمک کردی توی فروشگاه راه اندازیش و دوست خوب امیر محدی بودی و همکار خوب ما امیدوارم که در ادامه مسیر بتونیم همچنان ازت استفاده بکنیم با همدیگه همکار باشیم و به شدت آینده خوبی رو برات متصورم شالله که بتونیم از همدیگه یاد بگیریم و روزهای خیلی پر بهتر کاری و رفاقتی بیشتری رو با همدیگه داشته باشیم به خاطر همین یکی دو سال ازت ممنونم قطعاً عرضش بچه های 19-20 سالهی که کار میکنن زحمت میکشن و تلاش میکنن برای ما و برای شخص من خیلی بیشتر از شاید یک آقای خانم سی ساله است چون شما ها الان تایم بازیگوشیتونه الان تایم اشباهالتونه ولی شما این تایم رو گذاشتین برای کار کردن امیدوارم که 10 سال دیگه لذت این روزها رو ببری و کیف کنی از این که با الماس شروع کردی و صد البته کیف کنی از اینکه قرار با نوین الماس تموم کنی